همچنان که میروم اصل دستش را به سوی مجسمه سرباز اشکانی دراز می کند. دست بزنم نه اصل مگر نمی بینی به آن درشتی روی آن نوشتهاند لطفا دست نزنید اصل انگشتش را به پیکره دیگری نزدیک می کند. یک انگشت روی آن بکشم مگر عقلت را از دست داده ای دختر این نوشته را نمی بینی یا میبینی و کودکی می کی اما نمیتوانم بخوانم تو فرصت ندادی که من به مکتب بروم سردار تو این سرزمین را اشغال نظامی کردی اگر روی این شیشه کمی فشار بیاورم یقینا خرد می شود و فرو می ریزد. نگاه کن یک ترک ظریف از این سو به آن سو رفته است کمی فشار بدهم فرو بریزد بخندیم اینجا دکان بقالی نیست اصل یکی از خوبترین اثرگاه های دنیا است. اینجا با هیچ چیز شوخی نمی‌شود کرد. می شود خیال می‌کنی. تو چون آدمی هستی بیش از حد لازم جدی، گمان می‌کنی که جاهایی وجود دارد که در آنجاها اصلاً شوخی نمی شود کرد. من جایی را سراغ ندارم که در آنجا نشود شوخ طبیعی کرد. می‌گویم اصل شیهایت را دوست دارم. به شرط آنکه در هفتاد سالگی هم سهمی از وجودت کودک باقی بماند پسر جان در هفتاد سالگی که هر آدمی طبیعتن به کودکی های خیش باز می‌گردد و کودکی تمام عیار می شود. چیز دیگری بخواه برای همیشه سهمی از کودکی را در خیش نگهدار از امروز تا لحظه سفر بزرگ نگه می‌دارم. خواهی دید ولی دیگر من نیستم که ببینم من بسیار زودتر از تو خواهم رفت میخواهم سر به تن کسی که زودتر می رود نباشد به چه آفتابی آنجا بوی کهنگی و نای تاریخی میداد. زیبا عظیم و نفسگیر بود واقعا سری گذرا به کتابخانه ملی بزنیم تا بانوی تو با بانوی کتابدار دیداری کند مدت هاست که به دیدن ما نیامده مادرش بیمار است من از برادر حبیبیان و خانوم دکتر افشار برایش دارو گرفتم کار خوبی کردی خانم حبیبی هم هنوز آنجاست رئیس کل بله بانو هست یک روز به دیدنش برویم خوب کار میکند بعد سری به زیر پله میزنیم پسر جان آیا تو اثرگاه ایران باستان را دیده ای؟ سلام خیر قربان هنوز فرصت نکردم فردا همین فردا دکانت را ببند و سر فرصت به دیدن این اثرگاه برو شاید آنجا چیزهایی را ببینی که ما دیدیم و همان چیزها کمر تنهایی تو را بشکنند چشم قربان همین فردا اما دیگر سوالانی در کار نیست اصل اصلی هم نیست مجنون هیچ کدام اینها نبود من اینها را ساختم من سوالان را آفریدم من اصل اصل را در کندوی دور از دست کشف کردم اراده من، پافشاری من، شور و عشق من این راه بعید را پیمود با هفت لباس آهنی، هفت کلاه آهنی، هفت کفش آهنی، هفت اسای آهنی و چون آخرین لباس و کفش و کلاه و اسا چون بلور نازک شد در هم شکست خاک شد و فروریخت، من به آن چشمه رسیدم و کنارش دختر شاه پریان را دیدم مجنون رسیدن قیمتی دارد که باید داد خوشبخت شدن بهای سنگینی دارد نپرداخته چطور میخوایی به چنگش بیاوری خوشبختی جنس قستی نیست پسر خوشبختی را نقد نقد معامله میکنند با سکه های اراده، ایمان، کار اشق. دخترم، آیا تو اثرگاه ایران باستان را دیده ای؟ نه آقا، هنوز ندیدم، بشتاب، بشتاب، این درسها که میخانی در برابر آنچه که آنجا میبینی دیناری نمیارزد تو به مهد کودکت میروی، سالیان سال است که میروی، به عشق بچه هاست که میروی، نه به دلیلی دیگر، گرچه حقوق خوبی هم میدهند حق آب و گل پیدا کرده ای تو را چندین مهد کودک به عنوان مشاور می تلوند. بهزیستی تخصص و کاردانی تو را تایید می کند من به خانه می آیم. مادر امشب شام یک مهمان بسیار عزیز داریم برای من چه درست می کنی؟ ای قربان شما بروم با آن باغلاغاتو به هر وقت که ما مهمان عزیزی داریم شما دست به باقلاغاتق میشوی آخر همه که آشق غذاهای شمال وطن نیستن مادر خب باشند سلیقه پیدا کنند به خاطر عروسم میرزا قاسمی هم میگذارم کنار باقلاغاتق دستت در نکند مادر دیگر بیش از این خودت را توی زحمت نینداز اصل می خندد. پسر می خندد دخترک می گوید پدر؟ چرا میخندند؟ چرا ندارد دخترم؟ هر وقت منو مادر حرف میزنیم، اینها ریسه میروند. روند. کوله های کوچک آماده من را بر می داریم و راه میفتیم؟ هر کداممان شتابان به استخرهای خودمان می رویم. به سر با من می آید. شنا آب آب ولرم در اواخر یک زمستان سرد. یا پاییز یا پاییز حمام داغ؟ عرق ریختن و گوش بر گفتگوهای بیهوده بستن چه است زندگی کردن چه نعمتیست حضور اما این دیگر حرکتی است کاملا اشرافی مطلقا من هنوز در این سن و سال روزی دوازده ساعت کار میکنم و تو روزی ده ساعت کارهایی درست با بهرهگیری از تفکر و توانایی تو تا به حال هفت قالیچه فروخته ای غایچه ابریشمی ریز بافت تو را سر دست میبرند اما ما در خانمان هنوز و فقط سنقر کلیایی میاندازیم. من یک نمایشگاه خط گذاشتم و فروش خوبی داشتم. مردم خط را دوست دارند. شاگردان قدیمم مشتری های خوب من هستند. ما من و تو هنوز از قبل نواختن ساز نخورده ایم اما شاید یک روز بخوریم. ساز را کسی باید بالای سرش ببرد که قد و قامتی آذری داشته باشد و به او بیاید که چکمه بپوشد. نه آنکه در چکمه فرو برود و مفقود شود. من تارم را در بغل می گیرم و سرم را توی ساز فرو می برم. تعریف با ساز من میخواند. دف زدن به تو می آید. ستار زدن به قشنگ کامکار. من مهو ستار زدن او میشم یک نمایشگاه مشترک چهار نفره از سفال های من گذاشته ایم. و تو، رؤیا و اوژن. ها از ما سر است اما ما ایرانی تریم. گفتگوهای شبانه مفصلی کرده ایم تا در نمایشگاه بعدیمان شاید بتوانیم سفال های آبی ساده ارائه بدهیم. ساده اما خوش ترکیب. با چرخش های کاملا نرم. بدون تیزی، انحنا وجود دارد اما شکست وجود ندارد. راههای بیشماری به روی آدمهای زنده با ایمان باز است. ایمان باور قلبی است، اعتقاد ما حاصل تفکر و تحلیل. ما به هر دو مسلحیم. شبه روشن فکران را فراموش کن. انگل حقشان است که دائما نق بزنند. اصل ما قسمت کردیم. بل قسمت کردیم. ذره بیش از سهم خودمان برنداشتیم سهم ما حق مسلم ماست خوشبختی نه فقط ملک اعیان و اشراف نیست بل اصلا دیناری از آن هم به ایشان نمیرسد. نباید برسد ثروت خوشبختی نمیآورد. درست همانقدر که فقر فقط تنپروران بهان جو هستند که از نبود کار مینالند میدانم مرغ و خروس درخت میوه، کارگاه من کنار خیابان کتاب فروختم. مغلها، مغلها مغلها همیشه بودند اما زمین خدا سرشار از برکت است و مغز انسان مسئول سرشار از اندیشه های باراور. ما کار کردیم اصل، شب و روز، ما وقت را نسوزاندیم ما زندگیمان را با کار آراستیم و غنی کردیم، حال حق ماست بیا رفعت زندگی را حتی در ساده ترین دقایقش باور کنیم اگر شکوه متعلق به زندگی روزمره نباشد آخر به چه چیز میتواند متعلق باشد امروز من سفالگر کهنکار یک نمکدان تازه از سفال لالجین خریدم دوستش بدار و با آن به اوج شادی ها برو اما گلهایش به تدریج محو می شود. نه. گل در تن سفال است. بیش از من و تو دوام خواهد داشت. اما نبیش از عشق. تو که خوب می دانی اصل. سفال را اگر درست بپزیم به قدر عشق دوام می آورد. نگاه کن. این سفالی نیست که از دوازده هزار سال پیش مانده. تپاهای سیالک. و هنوز رنگی دارد آب آب آبی ولرم حرکتی آرام و آسوده در آب نیم گرم رها به تو میاندیشم به زیبایی تو